بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و خاتم النبیین و آله و صحبه اجمعین اما بعد کتابی که قرار با هم دیگه انشالله مروری داشته باشیم کتاب شمايل هست شمايل امام ترمزی رحمه الله و فسيح و حالا جنات ولی هرچنکه اخیران کفتمیشه مثلا اسم کتاب شمايل محمدی شمائل جمع شماله شمائل یعنی سرشت، یعنی تب، یعنی خوی، خلق، اخلاق شمائل هرچند که علاقه از باب جمع گفتی میشه به نسبت شکل و قیافه و اوصاف و اینا همه گفتی میشه چه از اون وصف اخلاق و رفتار و همه اینها شامل میشه خصلت و تبع و سلیقه و همه شامل میشه چه سلیقه داشت مثلا تو غذا خوردن چه چیزی دوست داشت رسول الله صلی اللہ علیه وسلم. تو شکل و قیافه اش چطور بود؟ تو رفتارش، منشش، تعاملش چطور بود با دیگران، با همسرش، با فرزندش، با نواهاش، با دوست، رفیق، همسایه، همه اینها جزو شمائل هست، اوصافه که اینجا امام ترمذی زحمت کشیدن در قرن سوم هجری اومدن این احادیث را برای ما جمعوری کردن در این کتاب از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم انتخاب کردن چون سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم شامل اخوالش میشه، افعالش میشه اوصافش میشه شامل همه اینها هست تقریراتش میشه اینجا هدف امام ترمذی رحمه الله جمع اوصاف رسول الله صلی الله علیه و سلم نه احکام فقهی و یا مثلا دیگر احادیثی که در بحث نماز و روزه و جهاد و غیره آمده یا در سیرتش اومدن این چیزایی که خاص رسول الله صلی الله علیه و سلم خصوصیات رسول الله صلی الله علیه چه خصوصیات اخلاقی چه خصوصیات خلقی داشت خلقی و خلوقیش خلقش به اعتبار شکلش و قیافشو ظاهر و مظهرش، لباسش، پوششش، همه اینها امام ترمذی رحمه الله اینجا برای ما جمع وری کرده از اون احادیث حالا که شاید بعضی ها درش زرف باشه که به ششاره خواهیم کرد ولی بیشتر احادیث این کتاب صحیح هست این کتاب را خیلی از, از علما شرحش دادن یکی از شرح که به نسبت بقیه یک شرحی متوسط هست به نسبت به این کتاب شرح شیخ عبدالرزاق عباد هست. که پدرش عبدالمحسن عباد که محدث مدینه هست. مقدمه هم مقدمیهم مینیوس براش بر تأیید و تخریج این کتاب و کتابی هست که مؤلفش زحمت کشیده و اون احادیثی که در این کتاب اومده رو شرح داد یک مقدمه ای داره شیخ عبدالرزاق عباد که پروفسورای عقیده رو داره در مدینه اساتید دانشگاه مدینه هم هست یک مقدمه ای داره این اینکه چرا این کتاب را باید بخونیم و برای چیه و چی چیزی تو این کتابه یک نکاتی هست که بهش اشاره میکنه و من این نکات رو خلاصه وار میگم چون مهمه خیلی مهمه انسان قبل از این کتاب رو شروع کنه بدونه چی داره میخونه و چرا باید بخونه چرا باید ماشمائل رسول الله صلی الله علیه و بخونی نکاتی هست ان خواهیم گفت اولش قبل از اینکه کتاب رو بخونیم کتاب پیرامونه کیه درباره کی داره صحبت میکنه از کی داره نقد میکنه این کتاب برای بهترین و محبوبترین خلق الله جل و علیه. بهترین و محبوبترین خلق الهیه این کتاب در مورد مصطفی هست. در مورد مختاره. اون کسی که الله جل و علا استفاش کرده، انتخابش کرده از کل خلائقش، انتخاب شده الله هم. الله او را انتخاب کرده. یک شخص عادی نیست. یک شخصی که الله او را انتخاب کرده و استفاش کرده و اختیارش کرده و انتخابش کرده. این شخص کامل ترین بنده الله جل و علا. کامل ترین بندگانه. از او کاملتر هیچ بنده ای نیست کاملترین بندگان الله جل و و خوبترین مردم در تعامل با خلق و مخلوقات کاملترین مردم کاملترین مردم در خلق و خود در رفتار خوبترین مردم در تعامل و رفتار نیکوترین پاکترین نیکوتر از رسول الله صلی الله علیه خلقی نداری نیکوتر خوش رفتارتر خوش برخورتر در تعاملش در رفتارش شما شاید تو ذهنه بیاد و مثلا اون صحابی عربی که میاد یک گوشه از مسجد ادرار میکنه و صحابه رضوان الله علیهم اجمعین زجرش میکنن انکار برش میکنن بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم میره دستشو میگیره میگه اینجا مسجده جای پاکیه جای این کارا نیست خوشحال میشه اون شخص و خرسند میشه از نوع تعامل رسول الله صلی الله علیه و سلم شخصی که سبور بود در مقابل ظلم دیگران یک اشعر گرفته ولی که باي وجود صحابه شمشیراشون میدونن وارد سر اون عربی را بزنن چون بیاده بی در راسالله علیه و سلم میکنه ولی که راسالله علیه و سلم آرامش خودش رو حفظ کرده خوب تر از راسالله علیه و سلم و نیکویتر از راسالله علیه و سلم در تعامل روش ما کسی نداری نیکویترین بود از مخلوقات الهی کسی هست که الله جل و علا خودش انتخابش کرده برگزیده است برگزیده است برای ختم النبوبت تمامی پیغمبران این همه پیغمبر فرستاده شده رسول الله صلّى الله عليه و سلم داناترین مخلوقات نسبت به الله و خالقش شما داناتر از رسول الله علیه و سر نسبت به الله هیچ کسی ندارید داناتر به الله جل و علا هیچ کس مثل رسول الله علیه و سلم شما ندارید داناترین خلق و خلائق نسبت به الله بود برگزیده شده یه الله جل و علا او رو انتخاب کرده استفا کرده و او را به بالای عرشش کشنده و برده. بالای آسمان هفتم، معراج، سبحان اصرا به عبدیه اول از مکه به بیت المقدس و از اونجا به آسمان ها را میبره این شرفه، این اکرامه، این جایگاه خاصی هست که الله جل و علا به این بنده مختارش و انتخاب شدهش داده پس یک شخص عادی نیست برگزیده شد از تمامی خلق برای این مقام برای اینکه به معراج بره به آسمان هفتم بره و رو گروه الله جل و علا صحبت بکنه باشه استقیم با الله صحبت کرد چه اکرامی بالاتر از این و چه جایگاهی بالاتر و بالاتر از این پس رسول الله صلی الله علیه وسلم داناترین خلق نسبت به خالق و آفریدگارش بون خالق و آفریدگار یکتا و یگانه شریفترین بندگانه در نسبش در اصلش نسبش شریفه اسیله رسول الله صلی الله علیه وسلم زنازاده نیست شریفه نسبش همه می دونن کیه، فرزند کیه، پدرش فرزند کیه، پدر بزرگش فرزند کیه، اصل و نسبش رو حفظ کرده و جایگاه قوم و عشیره خودش هم حفظ کرده. خیلی مهمه کسی مثلا میاد شد به اصل و نصبش توجه نکنه، او باش بازی در بیاره، سیده ولی او باشه، نصبش شریفه، زیر پا میذاره اون نسبش با اون رفتارش، بلکه رسول الله صلی الله علیه و نه شریف بود هم در اصالتش هم در نسبش و هم در رفتار و منشش زمانی که حجرالاسود را درش مخاصمت کردن درش اختلاف کردن که کی اون رو باید بیاره در اون زاویه کعبه بذاره اختلاف با هم کردن گفتن قرعه کشی می‌کنیم بعد آخر گفتن که نه هر کسی از اون بر... از اون شعب وارد شد از اون در وارد شد رسول الله صلی الله علیه و زمانی که وارد میشه میگه محل اتفاق همه بود از امانتش و صداقتش این لیاقت ها هر کسی نداره محل اتفاق همه بود اثیل بودنش و اون لیاقت و جایگاه معنویی که داشت در میان قومش همه قبولش داشته. همه قبولش داشتن به درستی و راستی از او راسورتر و از او نیکوتر کسی شما ندارید الله صلی الله علیه و سلم شجاعترین خلق الهی بود از او شجاع‌تر از او سخاوتمنتر کسی نداری تمام خصال نیک در رسو هم جمع شده تمام خصلت های نیک در رسو هم جمع شده شجاعتش بالاتر از این که وحی برش نازل میشه و کل مشرکین را میاد دعوت میده تهدید به قتلش میکنن کل یارانش هجرت میکنن جز خودش بکر صدیق میمانه در مکه 13 سال سیزه سال خطر مرگ رو تهدید میکرد هر لحظه شاد ترور میشد شجاع‌تر از این با سنگش میزنن فرشته کوه ها میاد زمانی که به طائف میره فرشته کوه ها میاد بهش میگه یا رسول الله بزار اخشب این دو تا کوه مکه رو به هم بکوبم نابود کنم هر چی تو مکه است ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبر رحمته و رافته پیغمبر شجاعه دنبال انتقام نیست شجاعت این نیست که تو انتقام تو بگیری کمر دیگری رو بذاری شجاعت اینه که تو در جایگاهی واقع باشی که خسمت بر تو تعذیب و زل بکنن و تو بتونی انتقام بگیری و ببخشی این شجاعت این سخاوت مندی این بخششه الله جل و علا زمانی که میخواد در قرآن یوسف را مدح کنه از کرمش و شجاعتش و سخاوت مندیش در مقابل خوستر برادرانش خب شما این مقام رو در نظر بگیرید برادران اومدن جلو روی یوسف علیه الصلاه و سلام ایستادن بهش میگن ان یسر فقط سرق اخ له من قبل اگر بنیامین دزدی کرده یوسف هم از قبل دز بوده برادرش برادر یعنی توی یوسف نمیدونن که یوسفه بلی که میبخشه الله چی میگه در مدح یوسف میگه فأسر رها یوسفه فی نفسه فأسر رها یعنی پنهان در دل خودش نگه داشت و لم یبتی حاله اون اظهارم ننکرد اظهارم نکرد اینجا دارن مشرکی بهش ظلمی کنن و اون فرشته که ها میاد ازش میخواد که بیاد اگر میخوایی به من اجازه بده تا این کو مکه رو به هم بکوبم میگه نه شاید از نسلی اینا کسی بیاد الله را بپرسته و سجده به الله بکنه این شجاعت ها شجاعت ها. این سخاوت مندی است. غیر از اکرام مهمان ها و مهمان نوازیش غیر از بخششش که ام عشه وصل میکنه خون وقتی که رمضان میاد میگه انگار که داره باد میوزه بس که مال تو دستش نمیموند خودش گش نمیخواابید ولی که نوذاش همسایه ها گشنگی بکشن یهود دنبال انتقامن رسول الله صلی زیر دیوار سایه دیوار سراحت میکنه سنگو برداشتن رو سرش بندازن ولی که رسول الله صلی چیکار میکنه بچه‌شو نگرد مریض میشد همون یهود میرفت به عیادت اون بچه یهودی که با شهادت این از دنیا بره اون بچه هم نگاه پدرش میکنه حالا حرف این پیغمبر رو گوش بدم یا نه شهادت رو بگم یا نه با خصوم خودش خودش اینطوری بود با دشمنان خودش اینطوری بود ازمون یهود تعاملش این چیه این نهایت مهربانی و میربرسی رسول الله صلی الله علیه وسلم انتخاب شده و برگزیده شده یه الله جل و علا سخاوتمندترین مرد دنیاست رسول الله صلی الله علیه کاملترین انسان هاست انسانی را الله جل و علا چینین نیافریده خب این وصف کمالش با این اوصاف نیکش میاز نیست که ما بدونیم چی هست چی در موردش اومده حالا من چند تا حدیث وقت گفتم در تعاملش با یهود در تعاملش با مشرکین مکه. من چند تا حدیث گفتم نیازی نیست که انسان مرور داشته باشه بر این برگزیده شدهی ای الله جل و علا الله چی انتخاب کرده چیه و کی این شخصی که الله برگزیده چه لیاقتی را در او دیده و هست که دیگران ندارن و دیگران باید ازش الگو بگیرن الله جل و علا وقتی که در قرآن میگه که لقد كان لکن فی رسول الله اسوه حسنه برای شما در رسول الله صلی الله علیه و سلم هست خب حتماً یه چیزایی را برگزیده در این بندهش بنده ای که برگزیده شده است اخلاقی هم درش گذاشته که باید دیگران بهش تأسیی بکنن الگو رو قرار بدن الله میخواد که ما چنان باشیم نه که مجرد یک انتخاب و اختیار باشه نه بلکه برای الگو گرفتن بلکه برای رهروی از راهشه پیغمبر انتخاب شده برای رهروی از راهش برای اینکه بنده بدون الله چی دوست داره الله معرفی داره میکنه بنده محبوب خودش برای چی؟ برای که دیگران بدونن چطور محبوب بشم به درگاه الهی هدف اینه هدف الله جل و علا از برگزیده کردن این پیغمبرینه معرفیه بنده محبوب خودش بنده محبوب الله جل و علا و خلیل الله بعد از ابراهیم کیه محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم این یاقت رو داشت نزد الله جل و علا که خلیل الله بشه نهایت محبت رو نزد الله جل و علا داشته باشه ولی خصوصا الله جل وعلا من قزي رحمكم يجي كي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرج الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرج الله اون كسي كي رجوته معيش برحمه اللهي كسي كي ميخاد مشموله رحمه اللهي بشه اون كسي كي ميخاد جلوه الله جل وعلا برو سفيدي بييسته اون كسي جلوه الله جل وعلا برو سفيدي بييسته با باكي بييسته اون كاسه اس رسول الله صلی الله علیه و الگوی خودش قرار میده و رسول الله همسازن برای او الگو هست و در دل او هم بزرگه خیلی مسئله مهمیه که شما دیدید مثلا بچه ها تو مدرسه خصوصا وقتی که بازی های حالا آسیا و جام جهانی و غیر و یا حتی کشوری میشه مثلا میبینید یک بازیکونی رو خیلی دوست دارن حالا دروازبانش یا مهاجمش شخصی که بولد شده خصوصا تو رسانه و بر سر زبان ها افتاده حالا با گلی که زده و پیروزی که مثلا به دست آورده خب اون بچه الگوش میشه چی؟ مسی بر سر زبانش مسی میخواد پیراهنی که بکوشه پیراهنه مسی شماره که میبینشه شماره اعمال مسی ها کیه این؟ پردنش پردس از روی کسی که دشمن اسلامه کسی که مؤمن نیست با الله جل و علا و رسالت پیغمبرش محمد مصطفى سبسان قبول نداره خب این شخص میشه الگوی اون فرد مؤمنی که هیچ چیزی از پیغمبر خودش نمیدونه ولی کنه از اون بازی کو میدونه و میفهمه اهل کجاست و کجا نیست و کی به دنیا اومده و چقدر بازی کرده بود چی بازی میبازی میکنه از پیغمبر چیزی نمیدونه اینجای تاسف رو داره تو جامعه خودمون که ما از پیغمبرمون ندونیم ولی کنه از دوربر خودمون خیلی چیزها بدونیم این زشته و نزد الله جل و علا نزد الله جل و علا ستایش شدنی نیست این فعل ما این رفتار ما جهل ما نسبت به پیغمبرمون محمد مصطفی صلی اللہ علیه این محل ستایش نیست این ناشکری ناسپاسیه الله جل و علا پیغمبری را انتخاب بکنه و معرفی بکنه و شرف رسالت و پیغمبری را بهش بده پیام از طرف خودش بعد بنده هیچ چیزی از اون پیغمبر الهی ندونه از اون شخصی که پیام آور الهی پیام از طرف الله جل مسئولی که به مردم برسونه و اون شخص در مورد اون پیام آور اون پیامبر هیچی نمیدونه این نهایت ناشکریه نهایت ناسپاسی در مقابل این نعمت و مننت بر خلق که الله داره الله بر سر من و شما مننت داره با فرستادن محمد مصطفی صلی الله علیه و و سلم و با انتخابش و برگزیده بر کردنش مننت داره بر سر من شما علی که ما هستیم که ناشکریم ناسفاسیم نرفتیم بخونیم بدونیم خصوصا این که دونستن اوصاف رسول الله صلی الله علیه و شماعیلش صحب میشه هم او را بیشتر دوست بداریم هم ایمان ما بیشتر میشه که الله اشاره خواهیم کرد در خوندن شمائل رسول الله صلی الله علیه وسلم درس هایی هست که این درس ها رو من سعی می کنم که بگم قبل از این که کتاب بشیم. اولیش بر هر مؤمنی واجبه که رسول الله رسول الله علیه سلم بشناسه اگه نه ایمانش قابل است. شهادتش حلکیه شما و چی وارد اسلام میشید شید؟ اشتاً لا اله الا الله و اشتاً محمد رسول الله حالا شخصی بیاد شهادتی این رو بگه ولی پیغمبرشو نشناسه ازش ایمانش قبول میشه واسه دنده محمد رسول الله ولی خود نمیدونه محمد کیه چیکاره است چی, چی آورده نه نمازی نه روزه هیچی چیزی نمیدونه از اون چیزایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از ما خواسته که ما انجام بدیم هیچ چیزی از دینش نمیدونه شهادتش مورد قبولی نیست اصلا و خصوصا اینکه شهادت به رسول الله صلی الله علیه و رسالتش مقرون شده با شهادت به وحدانیت خودش اشهد ان لا اله الله شهادت به وحدانیت و یگانگی الله جل و علا و اشتاد محمد رسول الله چیه؟ شهادت بر رسالت رسول الله صلی اللہ علیه و سلم از جانب الله جل و علیه این مقرونه بهش بعد میاد نماز و روزه بعد میاد حج و زکات همچنین در بحث ایمان علیه این اسلام و ایمانش همینا تؤمن بلله ملکتی و کتبی و رسولی و لیوم الاخر و قدر خیری و شرری ما اینها جز ارکان ایمان ما هست ما باید اینها رو بدونیم به کی ایمان رو و برای چی ای کیه این شخصی که ما بهش ایمان آوردیم این شخصی که الان برساده شده پس از واجبات ایمانی ما ایمان هست که اون شخصی گواه میدیم به رسالتش بدونیم که کیه و وظیفش لازم نیست که همه اوصافش رو بدونیم ما که بدونیم قدش قیافه‌اش چطوری بوده چطوری رنگ پوستش اینا چطوری بوده نه کافیه که اصل اون مطلب رو بدونیم یک شخص پاکی که پیام آور از طرف الله جل و علا و الله رو انتخاب کرده و بنده ی از طرف الله جل و علا بوده قل اینما انا بشر مثلكم یوحى الی بنده هستم هسه طرف الله جل و علا طرف الله کبر من وحی میشه کافی اینو بدونه بدونه این محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کیه حالا با وقتش دیگه نه از کمالیات ایمان از اینکه کجا به پیغمبری مبعوث شده در چه سالی به دنیا آمده چه سالی پیغمبری برگزیده شده پدرش مادرش کی بوده و آخر اینا از کمالیات ایمان که ان به الله خواهیم کرد الله جل وعلا ده قرآن قل إنما أعظكم بواحده أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا ندير لكم بين يدي عذاب شديد إن أياك نارش باديستي أبدا قتبخوني الله جل وعلا ده قل إنما أعظكم قل إنما بقل كيف ترسي شمار درمو عزيمي دمين ناسي بی واحده ای بخصله واحده یک چیز دارم شما را تاکید می کنم به این مطلب یک چیز خاصی هست به این مطلب خاص یک مطلب خاصی الله میگه من دارم به شما توصیه میکنم نصیحتت میکنم بهش چیه توصیه هر کسی نیست توصیه الله جل و علا به یک چیز دارم شما را توصیه میکنم اینجا در قرانم اونم اینگه اینکه تقوموا لله مثنا و فرادا این که بلند چی دو نفر دو نفر یا یک نفر نفر هر کدوم یا تکی یا با هم دست جمعی بیث بشین ثم تفکر بشینید فکر کنید اینجا نیاز به فکر کردن فکر کنید بشینید فکر کنید. تو چی فکر کنید الله جل و علا از ما فکر کردن میخواد نه کوکو رانه آقا پدرم مسلمونه پیغمبر محمدنه فکر کن درباره این پیغمبری که میخواد گواهی بدی. دی این پیغمبری فکر کن درباره تو مت تفکروا ما بصاحبکم من جنان این پیغمبری که الان اومده مبعوث شده انتخاب شده دیونه نیست برو نگاه کن تا آیا دیوانگی در رفتار منشش می‌بینی، جنزدگی درش می‌بینی؟ یه شخصی که جنزده هست یا دیوانه است، میاد اکرام میکنه سفرش پهن میکنه دست به سر یتیم میکشه دنبال یتیم میگرده که بهش کمک بکنه همسایه و نمیدونم دشمن خودش رو اکرام میکنه دعوتش به نیکی میده دعوت به بر والدین رو نمیدونم دست فقیر و مستمند گرفتن را به مردم توصیه میکنه آیا این دیوانه است؟ این کسی که چنین حرف خوبی را داره به مردم میزنه؟ از این که ما را حدر ندن پای بط و مرده و نظر و نیاز و برن پیش این زیارتگاه این بط و اون حالا جایی هم مرده و از ایصاف و نائله همه مشرکی بطی که با دست خودشون میساختن که نیپرسیدن جایی اشخاص را میپرسیدن مردگانی را میپرسیدن مثل ایصاف و نائل ایصاف و نائل دو فردی بودن به قصد زن آمده بودن یکیشون در صفا یکیشون در مرو تبدیل به سنگی میشن و به عنوان دوتا تا مرده پرسیده میشدن به خاطر همین آیات قرآن نازل میشه ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما یعنی چی فلا جناح اونایی که رفتن به حج میدونن دیگه الله جل وعلا میگه وقتی که طواف کعبه رو انجام دادی بعد رفتی صفه و مروه الله میگه اشکالی نداره صفه و مروه برید اي طواف بهما اشکالی نیست از اینکه طواف بکنه یعنی چی یعنی نگا ما صفه و مروه نریم حج قبول یا عمره ما قبول نه قبول نیست پس چرا اینجا گفت اشکالی نیست اشکالی به این اعتبار ذهنی برمیگرده چون صحابه چون سبب نزول رو باید بدونیم صحابه رضوان الله علیهم اجمعی در زمان جاهلیت وقتی که میومدن مثلا توافشون انجام میدادن این بود که باید تبرک بجوین در کنار تواف کردنشون میومدن ایصاف دسیبش میکشیدن راز نیاز خودشون ازش میتلبیدن بعد میرفتن پیش نائله دو تا همزناکار کارم هم بودن ها. نهایت بیفکری بیعقلی الله جل و میگه شما قبلا این چیلین تفکری داشتید این چیلین ایده و خیالی بهتون تصوری بهتون داده بودن باطل خیال باطل ولی اینکه اینها سجابت دعوتتون میکنن اینها اکرام شدن نز الله جلاله الله میگه الان که شما فهمیدید این کارتون نادرسته اینها اهلیت و لیاقت پرسیدن رو ندارن و فقط الله یگانه رو باید بپرسید الان اشکال نداره بازم بذارم در جاهلیت شما این کارو کرده باشید دور صفا مروه که چرخیدید این عیصاف و هم بودن قبلا بذارم این تصور رو در ذهن شما بیاد شما طوافتون رو انجام بدید خ جناله انگطوف و بهه به به ایصاف نایده است. خب رااص اصلن اومد بهشون گفت این همه مالی که شما دارید نظر می به این ب ها به این مردگان کار باطلیه برید خودتون دست ف بگیرید مستمندی بگیرید کمک یتیمی بکنید محتاجیه دستش رو بگیرید مریزی بهدهکاری دستش رو بگیرید. این کارکار در ست ای کوست. نه اینکه شما بیایید یه خزینه ای توی کعبه، مردم اون نظر و نیازشون بریزن توی اون صندوقه بعد ابو جهل بیاد تصرف کنه چون نمیدونم خزانه کعبه که یا ابو لحب یا هر کسی دیگر از سران خورش نه نه این کار نادرستیه این کار اشتباهیه کار درستی نیست رسول الله صلی الله علیه وسلم اومد راه و روش و منش نشونشون داد بس اینجا چیه؟ دعوت به تعمل دعوت به تفکر در مورد پیغمبری که ما گواه بر رسالتش میدیم کیه؟ آیا دیوانه هست؟ آیا اصالت نداره؟ آیا تعامل بلد نیست با دیگران؟ کیه این شخص؟ بیا نگاه کن اخلاقش رو رفتارش رو پس این دعوت به ما هست که شمائل رسول الله علیه وسلم بخونیم این آیه خصوصا تأکید بر خوندن اوصاف رسول الله صلی اللہ علیه وسلم و اخلاقش د بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما موزفه كرسول الله صلى الله سلم دستاشت وشمال لك نو دستي حديث داري كي عزمار المخطاب ناقمشه مماد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيه والله إلا أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا نفسي والله يا رسول الله تو بيشمان محبوب تريد همه عزمان بيشتات رو دسترام محبوب تريد بيشمان از همه أشخاص همه هر کسي كدر دنيا وجود داره إلا خوده رسو هستن روک عمر میکنه میگه یا عمر لا يؤمن احدكم حتى اکون حتى اکون احب ایلیه من نفسه میگه کسی ایمان ندار ایمان یعنی ایمانش قامل نیستانه که اصل ایمان ندار چون عمر رضی الله عنه مومن بود گفت یا عمر ایمان یعنی ایمانت به کمال نمیرسه تا اینکه مرا حتی از خودتن بیشتر دوست داشته باشی عمران را خطاب رو رسول الله صلی اللہ علیہ میگه فلا انت الان والله احب ایلی من نفسي، والله یا رسول الله الان تو از خودم هم تو رو بیشتر دوست دارم تو محبوب ترین از زمانه یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یعنی چی؟ یعنی هوای نفس خودم را زیر پا ها هم گذاشت مقابل قولت در مقابل حرفت زیر پاک میذارم غرورم هوای نفسم این حقیقت محبته این اولویت دادن به رسول الله صلی الله و در محبت و دوستی یعنی اگر نفس خودم اگر چیزی را خودم دوست داشتم اون دوست داشتن خودم را زیر پا خواهم گذاشت اون هوای نفس خودم و خواسته خودم در مقابل خواسته تو یا رسول الله علیه الصلاه و السلام چون تری نزد من حتی از خودم اقراره به این که تو تری نزد من از خودم همچنین از لحاظ جانی من کشته بشم ولی تو کشته نشی محبوبتری رسول الله صلی الله و حتی از خودش خاطر همین شما صحابه در نظر بگیرید سینه سفر میکرده برای رسول الله صلی الله علیه و آله خیلی جالبه من برها شرحش دادم و اینجا هم شاید نیازه که یک شرحی رو بدم عبد الرحمن بن عوف نقل می‌کنه میگه که جنگ بدر بود دست راست نگاه کردم در صف ها صف خودمون دیدم جوانی دست چپم نگاه کردم جوانی من کنار من دو تا جوان ایستادن 13 ساله 14 ساله دیدم که یکیشون میگی یا عم ای عمو صداش می‌زنه میگه شنیدیم فردی به نام ابو جهل دشمنان به رسول الله صلی الله عليه و salam میداد میشناسید دست چپم میگه نگاه کردم معاذ معود ابن عفره الله رضوان الله علیهم اجمعین میگه بهش گفتم می میشناسن اگر دیدمش به میگم دست چپم نگاه کردم این جوونه بهم میگه میگه ابو جهلی که رسول الله صلی الله علیه و salam دشمنام میداد میشناسید ناگرید موقف این دو تا رو جوان و ایمانشون به رسول الله صلی و مقام رسول الله و محبتشون در دل این دوتا جوان و فدای عمل کردن و جان برکف بودن در مقابل مقام نبوت و رسالت محمد صلی الله علیه وسلم بیگه تو وسط معرکه یهو ابو جهر را دیدم دیدم که پاهای این دوتا فرد بر روی زمین نیست دارم پرواز میکنن بیگه رفتن شمشیر از این و شمشیر از اون ابو جهر را این دوتا فر از بادر این محبت نفس رسول الله صلی الله علیه و آله از نفس خودشون اولاتر بود بمیرن ولی رسول الله صلی الله علیه و آله تنش آسیبی نبینه زخمی خراشی بر تن رسول الله صلی الله علیه و آله وارد نشه الله اکبر مقامه مقام که شرف کی اللہ جل وعلا بر رسول الله صلی الله علیه و آله داد ابا محبتت کی در دل, دل اصحاب و یاران گذاشته و یارانش هم انسانای کمی نبودن سربازان دیل بودن سربازان این پیغمبر بودن غیر از اون فرشتگانی که الله میفرسته برای اون معرکه ها سربازانی بودن که جان را فدا کردن برای حفظ رسالت رسول صلی الله علیه و سلم و حفظ اون مقامش شنوختان رسول الله صلی الله علیه و سلم و دیدن تعامل کردن داد و ستد داشتن کنارش از حرفاشو شنیدن میگه میشه انسان جان بر بشه و اون شخصی که براش جانشو داره فدا میکنه نشناسه نه والله حقیقتش را شناختن و چشمشون روشن شده دیدشون روشن شده با چهرهی رسول الله صلی الله علیه و سلم دلشون روشن شده شکوفا شده با سخنان وحی نبوت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم دل سیراب از ایمان شده سخنان وحی از زبان رسول الله صلی الله علیه و شنیدن مگه با اشخاص دیگر قابل خیاسن نه والله قابل قیاس نیستن بس این مسئله خیلی مسئله مهمیه محبت رسول الله صلی الله علیه و وقتی که انسان میشنوه حرفاش تعاملش داد و ستدش اینها سبب میشه که جایگاه رسول الله صلی الله علیه و و محبتش در قلب اون مؤمن شکوفا بشه و بدونه که اگر جانشو فدا بکنه برای دینش و برای حفظ جایگاه سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و رسول الله صلی الله علیه و در دلها اگر جانشو فدا بکنه لیاقتش چیه اینه که روز قیامت در امن و امان باشه در زیر سایه هرش و وارد حوز رسول الله صلی الله علیه و بشه اون حوزه که کوثر ان اعطیناکل این شرف رو پیدا میکنه که وارد اون حوز رسول الله صلی الله علیه و بشه چون فدا کرده خودش جانشو در گرو دفاع از دینش گذاشته و دفاع پیغمبر دینش پیغمبری که اون دین رو بهش رسول ده جانشو فدا کرده برای دعوت دادن به سوی سنت پیغمبرش جانشو فدا کرده این حقیقت این لیاقت رو خواهد داشت که اینجا رسول را اکرامش بکنه بفرمایید جایگاهت این حازه همینطوری نیست گفتیم در سوره کوثر مثلا مطلب که لا کردیم که انسان نیاز به جانفشانی داره برای دینش فصلی لربک وانحر و همز عبادت بدنی از اون نماز و روزه و هم از اون مالی و از نحر و قربانی اینها باید را از جان و دل انجام بده تا اینکه اون لیاقته را پیدا بکنه و وارد حوز رسول الله صلی علیه و بشه و در امن و امان در سایه عرش بمونه تا اینکه حساب و کتاب بشه و بعد از روی پل سرات عبور بکنه و وارد بهشت برین بشه سوم از درسای که اینجا شیخ عبدالرزاق عباد الله حفظش بکنه یاد میکنه اینه که الله جل و علا رسول الله صلی الله علیه و آله کرده و به ما دستور داده که از این الگو پیروی بکنیم امام اعظم امام اعظم ماست یعنی بزرگترین رهرو ماست بزرگترین رهبر ماست بزرگترین رهبر ماست که ما را هدایت میکنه به سوی بهشت برین الهی اولین کسی که از پل صراط عبور میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم اولین کسی که در بهشت براش باز میشه رسول الله صلی الله علیه و آله کسی دیگه نباشه میخوای پشت سر رساس اصلا وارد بهش بشی راه رو راهش باشه راهش مستقیمه به بهشت اولین کسی است که در بهش راهش باز میشه شرف مقامش این امام اعظم حزمت به اینه لز الله این جایی جایگاهی داره غیر از اون حوض کوثری که در صحنه محشه داده شده و اون امن و امنیتی که مؤمنانی که بهش ایمان وردن در اون امن و امان این اکرام الله جل وعلا الله علیه و اینجا الله جل در قرآن از ایمان ما الگوگیری <القوكيري> در رسول الله صلی الله علیه و یاد میکنه لقد کان لکم فی رسول الله اسوته حسن لمن كان یرجو الله و یوم الاخر کسیک ایمان به الله داره و روز اخرت رسول الله صلی الله علیه و آله قش باشه راه روش باشه پیرو ویش باشه کسی که ایمان به الله داره اگر ایمان به الله داری ایمان به روز اخرت داری القدش بش محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم همجيني الله دار قران مي وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتَهُوا اون چيزي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتون ميگه ازش پروي مكنيد اون چيزي كه نهيتون ميکنه ازش دست بكشيد الله جل وعلا ميگويد قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله اكبر پاداش گذاشته الله جل وعلا محبت من رو داريد ان كنتوا تحبون الله بقبشني محمد المصطفى عليه الصلاه والسلام اكر محبت الله راد ريد فتبعوني ازمان پیروی بکنید تا انکه چه پاداشی بگیرن اولش کم الله تا اینکه الله شما را دوست داشته باشه کم الله چه شرافی مقام بوله ترس اینکه بنده محبوب به درگاه الهی بشه الله او رو دوست داشته باشه شرف مقام همینطوری به وجود نمیاد با پیروی و اتباع از رسول الله صلی الله به وجود میاد و الگویی از رسول الله صلی اللہ وسلم بوجود يحببكم الله علیه و سلم به وجود میاد الله ویغفر لكم ذنوبکم او رو به عنوان الگو معرفی کرده برای ما قدوه معرفی کرده قدوه ما ما الله برای ما محمد صلی الله علیه و سلم چارمین این که رسول الله صلی علیه و مثلا پدر و مادر دستور میدن فرزندشون کار حرامی انجام بده اون فرزند اینجا از طرف والدین دستور داده شدن که حرامی رو انجام بده. مثلا جوانی دوست داره ریشی مثل رساسه سنو داشته باشه پدر میگه مادر میگه زشته. مردم چی میگن؟ میگه بچت چی شده؟ بچت سلفی شده؟ بچت نمیدونم رو شده؟ بچت داره راه کج را میره آخر. از وسواس شیطانی، وسواس خناسا هم زیادن، پدر مادرم از دوست و رفیق و آشنا و غیر آشنا میشنون فشارم رو بچه میارن، الان اینجا بچه متحیره دو دل حرف پدر را بگیره یا حرف رسول الله صلی علیه وسلم را بگیره، رسول الله صلی علیه وسلم سلم میفرما: "عفوا ریش ليش پدر مادر میگن: "نه، ریش نزار ازشته." حالا چیکار بکنیم این بچه؟ اینجا هست که چی؟ رسول الله علیه و اولاتر بشه نسبت به همه حتی پدر مادر، به نسبت اون فرد. حرفش وسخان الرسول صلى الله عليه وسلم نبات بزمين بشينه براي حرف فردي رسول الله صلى الله عليه وسلم ميفرما يعني ما من مؤمن الا وانا اولى به في الدنيا والآخرة هيك مؤمني نبات وجود داشته باشه إلا إنك من اولاتر بهش باشم من بهش اولاتر باشم در دنيا و اخرت اقرا النبي أولى بالمؤمنين من انفسهم برد بخونيت فرمودي الله جل وعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي اقرأوا میخواید این آیه را بخونید انش ان, إن نبی من انفسهم رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت مؤمنین اولاتر از خودشون حتی از خودشون از هوای نفسشون از پدر و مادرشون از دوست الله الخالق الله مخلوق اجازه نداره معصیت خالق را انجام بده لا طاعت المخلوق في معصیه الله, الله تعالى لا طاعت لمخلوق از هیچ مخلوقی نباید پیروی بکنی اطاعت بکنی در اون چیزی که معصیت الهی هست چرا رسول الله صلی الله علیه باید اولاتر باشه به ما چون رسول الله صلی الله علیه و آله نبوده مگر اینکه ما رو راهنموت ساخته گفته نصیحتمون کرده تمام تلاشش برای اینکه درهای رحمت و خیر را به ما بکنه انجام داده هر راهی دری ما رو بهش وارد میکنه به ما گفته و هر دری راهی ما رو را به جهنم میبره رو گوشزد کرده نه را این جهنم خیر تر از رسول الله صلی الله علیه و آله هیچ کسی دست به تو نیست حتی پدر مادرت خیرخواه تر از رسول الله صلی الله علیه و آله نسبت به تو هیچ کسی کس حتی پدر مادرت حتی اون حاکمت حتی اون حکومتت حتی آن حکومت. هیچ کسی همونطور که در حدیث سریم رسول الله صلی الله علیه و آله میگه هیچ در خیری نیست مگر بعد بهت گفتم و هیچ در شریری نیست مگر من که گوشزدتو کردم گفتم بهت پس رسول الله صلی الله علیه و این آیه رو باید درست بفهمیم النبی اول بالمومنین من انفسهم پنجم الله جل و علا در قرآن قسم یاد میکنه خیلی جا قسم میخوره به وشمس و الضحا و التین خیلی از مخلوقاتش قسم میخوره و الله جل و علا میتونه در حق مخلوقی از مخلوقات و به حق مخلوقی قسم یاد بکنه یعنی قسم به کرشیدش که آفریده و یا ماهی که آفریده و شب و روز الى آخر ولی که ما جائز نیست الله میتونه چون خالقشونه میتونه به عظمت اون مخلوقش قسم یاد بکنه ولی که ما اجازه و تنعم الرسول اساسا میفرماید من حلف بغیر الله فقد اشرک کسی قسم بغیر الله بخوره چیه دوچار شرک شده مثلا بگه به جانم به جان پسرم به جان بچه‌ام که سر زبون ها زیاده شهرکه قسم برای مخلوق درستی نیست مگر به الله جل و علا عمر بن خطاب روزی پدرش قسم یاد کرد گفت که جان پدرم بعد رسول اساسا عمر رضی الله عنه میگه لا تحلفوا بآبائكم قسم به پدرونت نخورید نگید به جان پدرم قسم فقط با الله جل و الله جللالا از قسم هایی که در قرآن یاد میکنه قسم به رسول الله صلی الله علیه وسلم نون القلم و ما یسترون قسم الله جللالا یاد میکنه اینجا به قلم و اون چیزی که مینویسیم با قلم و فرشتگان نوشتن و مینویسن بعد میگه ما انت به نعمت ربکا به مجنون تو در مقابل این منت و نعمت الهی وحی الهی که به تو داده شده دیوانه نیستی این حرفایی که از تو داره سادن میشه اقوال از دیوانگی نیست تو دیوانه نیستی و این لکه لأجرا غیر ممنون و در مقابل این دعوتت حرف و سخنانتن پاداشی خواهی داشت غیر ممنون غیر مقتول اجر و پاداشتن قد نمیشه و اینک قسم و اینک لعلا خلق عظیم الله اکم الله قسم يقعد يكني باخلاق والا و بالای رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم يقعد يكني ان اخلاق تو محمد خيلي بزرگه و انك لا على خلق عظيم خيلي رفطور منشت وكردارت بزرگه اي رسول الله صلى الله عليه وسلم حس الله جل وعلا خيلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بزرگه خيلي والاست والاست اخلاقش حس ان دي نازل الله جل وعلا ديگه تذکیه و تعریف و تمجیدی بناتر از این که الله قسم به اخلاقش یاد بکنه چه شرفی داشته نزد الله چه جایگاهی داشته نزده الله جل و علا خیلی حرفها این چنین بنده محبوب نزد الله بشه که الله جل و علا قسم به اخلاقش یاد بکنه و اینک لعلا خلق عظیم الله قسم به اخلاقش بخوره بله محبوبترین خلق الهی نسبت تمامی مخلوقات محبوب ترین خلق از هر کسی که الله آفریده از اون مخلوقاتی که آفریده رسول الله صلی الله علیه و محبوب ترین خلق به درگاه الهی مخاطر همین ام هم المؤمنین در مدح و ستایش از رسول الله صلی الله علیه و آله میگه کان خلوقه القران اخلاقش قرآن بود تو چیزی در قران نمیبینی که الله دستور بهش بده مگر اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله بر اون میبینی و چیزی نمیبینی که الله نهی ازش میکنه مگر اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله برش میبینی حرف و سخن روحی رو بر سر چش گذاشته بود بخاطر همین ام المؤمنین عایشه از وصف رسول الله صلی الله علیه و آله عاجز میمونه که چی وصفش میکنه؟ میگه وصفش همونطوریه که الله در قرآن میگه یعنی وصفش قرانه رسول صلی الله علیه و آله هرچی اون بنده مطیع و فرمانبردار الهی بود به تمام معنا اون بنده مطیع و فرمانبردار الهی به تمام معنا بود کهان قول قرآن و گفتم یعنی سبحان الله انسان وقتی که ما این چنین جایگاه را این آیات برداشت میکنه و میبینه نسبت به رسول صلی الله علیه و آله یعنی شکف زده میشه چیکار کرده رسول الله صلی الله علیه و آله که این چنین جایگاه را پیدا کرده نازل و چیکار کرده خب باید بخونیم بخونه می چیکار کار کرده درسته؟ که از خوندن این مطلب همینه باید بدونیم چه کار کرده که این جایگاه را کسب کرده؟ شیشومی مطلب این که الله جل و علا خودش سلوات و درود میگه بر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم و, و ملائکش هم دستور میده که سلوات بگن بر رسول الله صلی الله علیه وسلم و در تبع اون بمؤمنینم الله دستور میده که سلامات بجن بر رسول الله صلّ الله عليه وسلّم. الله جل و علیمی فرمیاد: إن الله وملائكته، إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلمو تسلما. صلّ الله عليه وسلّم. ای کسانی که می‌نویسند شما هم سلاماتو سلام به فرست بررسیل الله صلّ الله عليه وسلّم شود الله داره برش درود میفرسته، سلامات میگه، سلامات یاد نی که الله از رسول الله صلی علیه در ملع اعلی نزد فرشتگانش، الله داره افتخار میکنه به این بندهش، ای بندگان من این بنده نی که من محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم این صلوات الله جل وعلا و ما هم از الله میخواهیم که این یاد نیک را برای رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشه صلوات ما یعنی این یعنی ما داریم از الله میخواهیم این مقام را برای رسول الله صلی الله علیه و سلم حفظ بکنه و همواره باشه برای رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی ما بر این جایگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم راضی هستیم و میخواهیم و ما ره رو راه راه باشیم که ما هم مستحق این صلوات باشیم به خاطر همین رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند زمانی که الله بنداش را دوست می‌دارد جبرئیل او صدا می‌زند در آسمان محبوب ترین فرشته محبوب ترین فرشته نه ترین خلقش. محبوب ترین خلق محمد مصطفی صلی الله علیه و ولی محبوب ترین فرشتگان خاطر رسالت اون پیامبر الله از آسمان به زمین به محمد مصطفی صلی الله علیه و جبرئیل و محمدا به خلق خدا خلق الله جل و علا جبرئیل صدام میزند ای جبرئیل من فلانی را دوست دارم به خاطر اون اطاعت و برداریش از ذرات الله جل جلاله فلان رو دوست داره ای جبرئیل او رو دوست داشته باشه جبرئیل نفرشنگار را ندا میزند صدا میزند ای فرشتگان الهی که الله شما را آفریده الله فلان بنده را دوست دارد این ها. نوعی از صلوات نوعی از دروده. نوعی از ستایش بنده است در ملع اعلی الله زمانی که بنده را دوست میدارد این چه دستور میده که جبرئیل او را دوست داشته باشه پیا جبرئیل هم به بدی گفت فرشته ابلاغ میکنه که شما هم با او دو رو دوست داشته باشید سپس محبتش و قبولیتش در دل خلق گذاشته میشه مشرکین خودشون حتی با وجود که ایمانه به رسول الله صلی الله علیه و سلم نداشتن دوست داشتن که تلاوتش را در اون خفا بشنون چپنگام بنان میشدن میرفتن گوش میدادن که رسول الله چی داره تلاوت میکنه قلبا پیغمبر خدا را دوست داشتند علیه الصلاه و بلکه تحصب جاهلیتشون توش مونده بودند پدر مادر و ایل و تبار مانه از ایمانشون به پیغمبر شده بود ولی که اون تهارتش، اون پاکیش بهش ایمان داشتن به اون امانت و امانت داری و صداقتش ایمان داشتن ولی که انادت، لجورزی، جهل و جاهلیت سبب شده بود که ایمان نیارن پس سلوات ما بر رسول الله صلی اللہ علیه وسلم رضایت من به اون مقامشه و خاصه منم از الله جل و علیه اینه که اون مقام که لایق شأن رسول الله صلی اللہ علیه و سلام حبس بشه پایدار ببونه و از الله می‌خوایم که اون صلوات و درود رو همباره داشته باشه بر رسول الله صلی الله علیه و سلام خیلی مهمه الله بندگی رو بستایه. ستایش کنه الله جل و علا یاد خیر ازش بکنه حسین اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلام داریم که الله داره میگه بهمون به که من در ملائعه درود میفرستم برش جلو فرشتگانم مقامی هست که رسالتش با بندگیش به دست آورده با بندگی همینطوری نیست گفتیم رسول الله صلی الله علیه و آله از لحاظ بندگی به نسبت الله جلب و علا بنده بودن بالاترین شرف و مقام رو داشت. هیچ کسی از رسول الله صلی الله علیه و آله نمی‌تونه سبقت بگیره در بندگیش، چون هیچ کسی نسبت به الله داناتر مثل محمد مصطفی صلی الله و آله نبود. سه تا صحابه بودن، گفت یکیشون گفت که من شب هم نماز تهجد می‌خونم، یکی دیگر گفت که من هر روز روزه میگیرم، یکی دیگه گفت من اصلا بازنام نمیخوام بیدار شب شب‌ها بیداری می‌کنم. رسول الله صلی الله و آله چی فرمودن؟, فرمودن؟ که من از همتون با الله ترم چون داره از تون متقی ترم ولی که شب میخوابم متہجدم میخونم روزم میگیرم با همسرانم هم بسری دارم اینها مانع پرهیزگاری نیست شما فکر نکنید راهی غیر از راه من شما راه پرهیزگاری و تقوا میرسونه نه راه رسول الله صلی الله علیه و راه پرهیزگاری راه تقوا است چون در شناخت الله جل و علا هست. رسول الله صلی الله علیه و الله را شناخته و الله هم علا این پرهیزگاری و تقواش و مقام و جایگاهش داره به ما ابلاغ میکنه. این الله و ملائکته و یسلیه لعنی نبی. این ستایش ها که الله داره یاد میکنه به ما. مقام بندگی هست. مثلا من یک مثالی میزنم در مقام بندگی. که چقدر به انسان لیاقت و شرف میده حجه انسان میره چونه الله جل و علا میسته. زحمت کشیده مال جمع کرده از زن و بچه و زندگیش زده میره حج یک محباد اونجا بشینه بعد بره به منا با خستگی و کفتگی و بعد بره به عرفه خیلی مقام عظیمیه محروم آن کسی که ندونه کجا ایستاده، کجا ایستاده؟ حرف جاییه که الله جل و علا فرشتگان را صدا می و می گوید و میاد بخاطر اون فرشتگان با آسمان دنیا و مباهات اون خلقش را می میگه به افتخار میکنه کنه, می می کنه با اون خلقش که اونجا جایی استادن ای فرشتگان شاهد باشید که اینها برای من اومدم که اونها را ببخشم شاهد و گواه باشید که همه رو بخشیده مقام چیه بندگی بندگی داری داری می کنی برای الله جل و علا مالی که جمع کردی داری میدی برای ایستادن به اون جایی که الله تمنا داری تو را ببخشه و بیا مرزه و روز سفید جلوه در صحنه محشر بیستی ایمان به الله هست ایمان به پیغمبر که ابلاغت کرده که باید اونجا بیستی هست ایمان به روز آخرت هست این جلوه داره جلوگیش در این بندگیشه برای الله جل و علا حالا شما نگاه بکنید رسول الله صلی الله علیه که از لحاظ بندگی شریف ترین مقام را داشته و دارد نزده الله جل و علا و اینچین این هست که الله جل و علا او را میستایه در قرآنش هفتم از دروسی که در بحث شمال یاد میشه اینه که سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکوفاست با اون درس‌ها و عبرت هایی که کسی که رهروی بکنه و ازش بگیره زندگی شکوفا میشه زندگیش پرخیر و برکت میشه هم در این دنیا و هم در اون دنیا آخرت آخرتش ما گفتیم ان ما به او اعطینا تکریم میشه وارد حوزه رسول الله صلی الله علیه میشه کسی که ره رو راه رسول الله صلی الله علیه بشه و او و سیرتش را الگوی خودش قرار بده این شخص این لیاقت ابتداییش اونجا هست تکریم الله جل والا غیر از صحنه ماشي همون قبرش هم. الله دستور میده که دری از درهای بهشت باز بشه به قبرش و از باده های خوش بهشتی و بوی خوش بهشتی در قبر و بنده مؤمن تمیله بشه این پاداشه تو اکرام میشی از سوی الله جل و علا چه در زندگی یعنی آن که بر روی زمینی با دو پا داری میری چه در اون زیر قبری که خوابنده خواهی شد و چه در صحنه محشر و چه بر روی پل سرات و در اون بهش با میبه ها و اون درختانی که در بهشت زندگی که الله جل و علا از یک زندگی که ازش اعلان رضایت داره و خشنود ازش داره یاد رسول الله صلی الله علیه و سلم در تعاملش گفتیم چه با زن و چه با بچه و فرزند و در درو همسایه و دیگران و هر کسی. الله داره او رو می ستایه. رسول الله صلی الله علیه و سلم خوشبخترین سعادتمندترین فرد دنیا و آخرت. شک دارید؟ نه. رو هم نمیتونیم بکنیم کسی از رسول الله صلی الله علیه و سلام خوشبخت‌تر و سعادتمندتر باشه. خب یعنی چی؟ یعنی کسی که دنبال خوشبختی و سعادته در غیر از راه رسول الله صلی دنبالش نباشه. کسی که دنبال خوشی و سعادت. در غیر از راه رسول الله صلی الله علیه و دنبال اون خوشی و سعادت نباشه خوشی که در, در رسول هست در هیچ کسی نیست خوشی و سعادت خوشبخترین خلقی که الله جل و علا در رسول الله صلی الله علیه و آله و خوشبخترین سعادتمندترین به خاطر همین است که الله جل و در رهروی از راه رسول الله صلی الله علیه و چی یاد میکنه پیروزی بزرگ حقیقت پیروزی اطاعت و فرمانبرداری از الله و پیغمبرش من سه تا می این سه تا شما مد نظرتون قرار بدید اول فرمودید الله جل و علا و من الله و الرسول و من الله و الرسول که از الله و پیغمبرش اطاعت بکنه اولین پاداش فؤلاء كما الذين انعم الله عليهم من النبین والصدیقین والشهداء والصالحین اولین نعمتاتی که در روز آخرت در فردوس رفيق كي بود ياري كي قهد بود؟ پيغمبران و صديقين و شهداء و صالحين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إن دقي بهترين رفاقاتك إنسان میتونه كسبش بکنه كسبش يطاعت از الله ورسوله شو بکنه آخر عقباتش رفيق پيغمبران و صالحين و شهداء و صديقين إن لياقت همچنین الله جل و علیه آیه دوم و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیمه فقد فاز فوزا عظیمه این شخص بهره برده از اون پیروزی بزرگ این پیروزی بزرگه اطاعت از الله و پیغمبرش چیه؟ پیروزی بزرگ الله داره میگه پیروزی بزرگ من نمیگم آه این دستور و فرمایش من نیست این فرمایش الهیه کسی که از الله و رسولش پیروی بکنه بهره برده از اون پیروزی بزرگ فوز بزرگ همچین الله جل و میگه و من یطع الله و رسوله یدخله جنات انتجری اونجا اولین آیه رفاقت پیغمبران دومین آیه پیروزی بزرگ و بهشت سومین آیه بازم تأکیده برامون مطلب قبلی یدخله جنات تجری من تحت هل انهار وارد بهشتی خواهیمش کرد که زیرش دوبله درختانش رودها جاریز تجری من تحتها الانهار وما یتوله یعذف عذابا علیمه خوشی و سعادت در اینه که تو راه رو راه رسول الله صلی و وسلم باشی و از الله پیروی بکنی اطاعت بکنی و پیغمبرش خوشی و سعادت در اینه بهشته بر اینه و در معاندت در مخالفت چیه؟ در تولید و پشدادنت به دین و شرع الله و رسولش چیه؟ و من يتولى يعذب عذابا علیما راهش راه خوبی نخواهد بود چی خواهد بود کجا خواهد بود جاش جهنم چه عذابی خواهد داشت عذابی دردناک راه خوبي راه بدیه؟ راه بدیه راه خوب کجاست؟ راه رسول الله صلى الله عليه وسلم راه بد کجاست؟ راه جهنم راه هوای نفس راه هوا و هوس راه شیطان پیروزی در اینه كه تو بر هوای نفس چيره بشي غلبه بر هوای نفس و از اون راه خسران و زیان دست بکشی و وارد چه راهی میشی بر نفست غلبه بکنی هوای نفست غلبه بکنی و پیرو به راه رسول الله صلی الله علیه و سلم بشی و راه پیروزی را بگیری غیر از اون راه راه بدبختی و خسارته غیر از راه رسول الله صلی الله علیه و سلم چیه راه بدبختی و خسران و زیانه راه خسارت و پشیمانیه ندامت توش در روز آخرت گله هست از الله جل و علا نسبت به بندگاریش ما قدر الله حق قدره بندگان قدر الله رو ندونسه اگر قادر الله را انسان قدر پیغمبرش میدونن نه دونسن قدر دینش نه قدر این پیغمبر مصطفی الهی انتخاب شده الهی چشتم ایمان به رسول الله صلی الله و سلام بشناختش سبب میشه که یعنی هر چی ما بیشتر بفهمیم و بشناسیم رسول الله صلی الله و سلام ایمانمون قوی تر بشه به. بهتر بشه و بیشتر بشه بهتر بشه بهتری در نوع لذت بردن از ایمانه یک خرسندی و یک خوشی در دل خودت احساس میکنی نسبت به دینه نسبت به کاری که داری انجام میدی. یعنی اگر خلایق همه از تو ناراضی باشن بهت بگن این راه اشتباست چون راه پیغمبر را گرفتی تو در دل خودت احساس میکنی تو بهترین احساس خورسندی میکنی یه خوشی در دل خودت داری خوشی و لذت بندگی نسبت به الله جل و علا در تو اون احساس بندگی شکوفا میشه در غیر این صورت نه تو یک بنده ای که اون عبادت تبدیل به عادت شده بیشتر ما اینطوریم از نماز خودمون لذت نمیبریم چرا اون نمازه اون عبادته شده عادت ترى تشوف رهره وراه رسول الله صلى الله عليه وسلم نيستي اذا رهره وراهش باشين اون عبادته مشه لذات خوشي احساس السعاده ترقال مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببلال اخته وقته نमाज ميرسيل يقول ارحنا بها يا بلال بلال راحتي بنكون يعني شو راحت المنكون ما صار بندازيم لا لا خوشي رسول الله صلى الله عليه وسلم بون تلاوه قرانه لذت بيبر بون قراءتش تلاوتهش عهدی قرآن تلوت میکند، سر نماز با الله داره مناجات میکنه، سخن میگه مناجات میگرستوس و سلام داره سخن الهی را میخونه، بر سر زبانش میاره لذت میبره، این مقام و چیه بندگی میدونه در چه جایگاهی واقع شده، از عبادتش، از رکوعش، از سجدهش اب الله هم میخواد تو ره را و راه را رسول الله سلام باشی، تو هم از عبادتت لذت ببری، تو هم بدونی، تو هم این مقام و شرف برسی. این عبادتت تبدیل بشه به اون بندگی نعادت. هرچی ما بیشتر رسول الله (ص) بشناسیم، اون بندگی ما نسبت به الله جل و علا بیشتر و بیشتر میشه. بالاتر همین الله جل و علا میگه از باب سرزنش به اونایی که به رسول الله (ص) ایمان نیاوردن و راه را به راه خودشون قرار ندادن میگوید ام لم یَعْرِفُوا رسولهم فهم لَهُ مُنْكِرُونَ" میگه مگه پیغمبرشون نشناختن با اون اخلاق و رفتار نیکش که منکرش شدن؟ شناختید که این پیغمبر صادق امانت داره. چرا بهش ایمان نمیارید شما که میدونید بهترین و محبوب ترین خلق الهی رسول الله صلی الله علیه و چرا نمیخوای او را الگوی خود رو الگوی خودتون قرار بدید این سرزنش الله جل وعلا ب اونهایی که این مساله الگوگیری از رسول الله صلی الله علیه و آله رو کوچک می کم می کم نشمارید خب خیلی گفتم الان کسی که سیرت به بخونه خیلی چیزها ازش درس و عبرت میگیره خصوصا نأياتك الله جل وعلا عز ما تفسس تعيش نسبته على رسول الله صلى الله عليه وسلم ي هاد يكون مسل الفاء الله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضلا غليظ القلب إلا من حولك فبما رحمة من الله لنت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة يفوت حس جانب الله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم مشمول رحمت الهی شده بود که اینچینین با مؤمنین نر باشه خوش اخلاق و خوش برخورد باشه اینچینین عزیز دلها باشه اینچینین صحابه اون را دوست داشته باشن رسول الله صلی الله علیه و سلم در مرض وفاتشه زحمت کشیده 23 سال دعبت داده اونها را جمع کرده قبل از وفاتش فاتش لشکر کشی میکنه بیش از ده هزارتن و گفته شده صد هزار تن در تبوک جمع میشن پشت سر تا دو سال جلب میجنگن همون پیغمبری که تا ده سال قبل تا نه سال قبلش در بدری ایستاده با 300 تن فقط میجنگیده جنگده با مشریکینی که سه هزارتن بودند. ولی اینجا بعد از نه سال اون لشکر شدن بیش از ده هزارتن در بشر از جمع شدن، جانست تاب پا چسبیدن شانه به شانه چسبیدن. غیر از اون زنای با حیایی که آخر مسجد نشستن و نماز می و خودشون رو پوشوندن که کسی هم اونها را نبینه از حیاشون از ایمانشون قلبها هم سرشار از ایمان شده با وجود رسول الله صلی الله علیه و سلم. نوری بود برای امت و برای اونهایی که راه راه راشن اونهایی که رسول الله را دوست دارن و نور می نه که خلقتش از نور بوده نه خلقتش مثل ما بشری مثل ما بوده از خاک و از انجیل بوده از همین خو زمینی هست که ما ازش آفریده شدیم رسول الله و از همون آفریده شده ولی که با اون نور نبوت دلها را نورانی کرده بود شکوفا کرده بود به خاطر همین الله جل و علا میگه قد جاءکم من الله نور و, و کتاب قد جاءکم من الله نور و کتاب از جانب الله جل و علا برای شما هم نوری فرستاده شده هم کتابی که اون کتاب کتاب قرآن هرچند این وجه از وجوه تفسیره بجهة از وجود تفسير بعضي از مفسرين قفتان كي إن نور نسبة بقرآنه إن نور نسبة بكتابه وقرآنه و بعضي دیگر از مفسرين مثل من الجزيم ياتمي كونكي نور مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قد جاءكم من الله نور و کتاب مبین اسراف الله جل جلاله و جانب الله جل جلاله برای شما هم نور داده شده که محمد صلی الله علیه و سلم هم کتابی مبین حالا هر چن گفتین یک وجیه از وجود تفسیره بس رسول الله صلی الله عليه و سلام نوری بوده برای غیر از اون سخنانش که نوره سخنانش بدون شک فحی الهی نوره خودش هم اون رهنمودهاش نوره و زندگی با رسول الله صلی الله علیه و سلم نورانی میشه زمانی که خب مثلا مثلاً بالفرز در زندگی انسان دوچار اختلاف میشه. دوچار بگیم اختلافات یا دلخوریها یا هر چیزی که در زندگی بخواد پیش بیاد. زمانی که انسان میبینه تعامل رسوله صلی اللہ علیه وسلم چطور بوده چطور نبوده. اونجا هست که با اون سنت هم مردش هم زنش خانه میشن، هم پدر و مادرش هم خواهر و برادرش فیصله میشه. الله صلی الله علیه وسلم نوره برای خ برای اون پدر که میخواد پدر نمونه باشه، برای اون شوهر که میخواد شوهر نمونه باشه، رسول الله سر نمونه بود، نمونه تر از رسول الله سر کسی نخواهی داشت شما و دنبالش هم نباشی. رسول الله صلی الله علیه و گفتیم الله شما خیلی زیاده، مطالبهام خیلی زیاده و الله بهمون توفیق بوده که درست بخونیم و درست راه رسول الله صلی الله علیه و بگیریم رسول الله صلی الله علیه و سلام من یورد الله به خیرن یفقه فی دین کسی که الله خیر بهش بخواد فقه در رو بهش میده کسی که الله خیر خواشه یعنی کسی که الله خیرگیتش خاصه این که ما از رسول الله صلی اللہ علیه و بدونیم که چه راهی رفته و رد پاش رو بگیریم جای پاشو پامون بذاریم این نیاز به توفیق داره نیاز به خیرخواهی الله نسبت به ما داره این لیاقت میخواد. هر کس این لیاقت را نداره. این که ما نشستیم الان و پیرامون رسول الله علیه و سلم این مقدمه را گفتیم و هم قدمی دیگر برداریم بدونیم از راه رسول الله که جای پاش و پا بذاریم. این لیاقت میخواد، شرف میخواد و ما برای این شرف واد زحمت بکشیم. این لیاقت و شرف همینطوری به دست میاد. الله جل و زمانی که عطا و سرزنش میکنه، اون عطا و سرزنش به اراده ما بر بیگردنه. میگه فلام مزاهو ازاغلا الله آم. خودش رو دوچار زیخ شدن نخواستن و هم نخواست پس چی؟ تو اگر بخوای خدا برات میخواد زحمت میخواد خستگی میخواد شما نشستید تحمل کردید ولی برای دینتون بود برای اون پیامبری که اینچنین لیاقتی را پیدا کرد و برای اینکه خدا اون اونچنین لیاقتی را پیدا بکنید نشستید و این حرفا را شنیدید از الله میخواهیم که همون تو که این توفیق را داد که ب توفیق عملا هم به همون بده، توفیق رهروی روی و فیر روی از راه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلمم هم به همون بده و آقابت بخیرمون بکنه از این دنیا و بروس صفدی بریم و کنار و جوار رسول الله صلی علیه و وسلم در بهشت برین جایمون و جایگاهمون و والدین و بچه همون و همسران قرار بده سبحانه کالله سبحان الله بحمده و صلی اللہ محمد و آل محمد